بعد از زیارت خاله دیش کشیدم من. مرمر مرمر مش van به oczywiście نوجه و چی خواست ما هر کاری میتونستیم کنیم. چرا مهربانم مهربانم یه اتفاقاتی افتاده که باید برای توضیح بدم جدی آروم باش جدی باگی این <تصفح> من آروم باش. آروم باش مهربون من تو حسابات تسلیم میگیری. تو من چیزی که تو از زندگی بدو زدمت فقط بدون هر کاری کردم واسه خاطر تو این پیدا میکنی. الان زمان مناسبی نیست. بهت گفتم باور ویروس. بله، می‌خواد اینم حرمتای بینمون شکسته بشه. اینم خانه‌فوشت به ویرانه کنم برو. دیگه نه به خب صدا تو بشتم. نه می‌خوام به حرفات گوش کنم. دیگه می‌خوام ببینم فقط میخوام تنها باشم سلام عروس سلام. خانم شمایی؟ ای؟ اینجور تصمیم ما رو نمایت کن پا باشه ازدواج باش می‌کنی شام من از ریشه حلش می‌کنه با هم که باشیم میریم بالا کیش شما تو رو دو ماهه است خوبه اما شده یه فکری بکن که هم کار تو بکنی هم بچه‌ت رو نگه داری خیلی دردی می‌شه آدم اینقدر اوج‌رنج میشه بیا یه رسونا شوهرت آیندت باید در جریان ریز کارات باشه ترسم شهابو مجبور کرده باشه بین استوار ببخشید شما برای چی رو آورده اینجا آدم‌ها استیاد نمی‌دونن علی مشاهر رو بچون راستش خود منم نمی‌خوام کسی داش تمام زمانی که به دنیا آمد هیچ جا نورد. مادرش بمیره واسه. میگوارم تا اصغر من سلامات کلام می سرم. اوه، میخوای اینو برگشت بزنم بندازم زندون؟ دوستش باید پرخوش بشه چونش فرمون این غلطه. مادرش درد میشون نمیدیدیم شاوو تا اینجا کردن تو خواهد شبا خیلی بیجاد کردی تا وقتی کار کنی خودا برگردیم همین جودی که نمیشه دیم. تا هر جهنمی به پا میکنی به پا کنی, بپا کنی بپا کن. من کار خودمو میکنم زشترون اتفاقیه که داره میفته زندگی رو حواز چرا تیر قیب دیمیدونی دیمی چیه همین روز از عطابق خان فروخته با آقای سلماسی عطابق خان شکر خورد اینجا مرک پدری منه بله وای نایستان دابود یه دو قرم بذار کف دست این افلیج اینجا ردش کن بذار بره تو چشم بقام میدونی من کیم؟ من دختر شکوه و سلطنم منم ناصر دنشای قاجارم دستتون به من بخوره بخاره دودوان رو به باد میدم وسائل منو چیکار کردین؟ بابا وسائلت خانم اونجاستم ver farm شدیم با در عجبم زندگی دوبار روی خوشش به من نشون داده یه بار درست وقتی که مطمئن بودم به دستشو بردم از دستش دادم بعدش در دلمو بستم سرمو گرم کار کردم حالا دوباره بعد مدتها دوباره پیداش کردم دوباره عشقو پیدا کردم ولی بازم دارم از دستش میدم. برزخنو. شما هر کلی لازم بوده کردین نکردین اگه تقدیر منو سر راه مهدخت سبز نکرده بود الان زنده بودی یه گوشه داشت زندگیشو میکرد اگه تو زندگی مهربانو هم بودم زن اون بکساره میشد مهرات نه بلایی سر پدر مهدخت میامد نه مهربانو ادامه شد چطوری خودمو ببخشم ولی آقا مهبانو ایچ شباعتی به گذشتش نداره سختی رو بزرگ میکنه اون الان سهم بزرگی از زندگی داره بس چشم نه تو بسیده نبی تو مریده منی که هنوز از فاصله موسیقی خسرو جان برو بخواب خسرو جان بی خودی داری خود تو از نام میده خسرو با تو صدای ازش نمیاد بست دیگه هر چقدر خواستی تنها بودی الان سه روزه که اون توی مهبانو کافیه سبونت هم که نفتی مهبانو نیست رفته خواهی با کسی کار دارم. تاکی کار داریم. اینجا برای ایندیسیاس کار. با ماست کیتون کاره و نوراگی برا. بله خوب اسمشو مابقی فرمت کن. طول قسمت ماست یک دقیقه صبر دوکن سوارون نمیشناسن، نمیشناسن کنم سواره. متاهلی با خودش هستیم، اون آقا قاضی هستن. بله، بله، بفرماین، بفرماین، بفرما برو خانم، برو، مدام نشون، برو، مدام نشون، برو. درده بار همه آدم که بعد از خواهبادم عدای دوستی و محبت رو درمی آوردن یه مشصود خواه فرصت طلب بودن اخصوصا مردا همشون حامی و همدم زنان اگه پدرم باشن که دیگه هیچی فرشتن خوشبالم این که سایه پدر بالا بابام یه هدیه برات گرفته بود، قایم کرده بود گوشه خونه اولش خیال کرد، مال من بعد که ازش پرسیدم گفت نه مال مهمان و خانومه گفتم خب چرا بهش نمیدی؟ گفت هنوز وقتش نیست ولی ما فکرم الان دیگه وقتشه حالت هم عوض میکنه نظرت هم اصابه مرد عوض میشه بسه برات بیارم ببین آقا جونم چی برات گرفته پدرم همیشه میگفت این حمله ای که مهبانو بدین میکنه به خاطر موج دینیه که تو دلش میزنه میگفت مهبانو خورده میگیره که چرا دینداره جلز رنبای نمیسن چرا خودشون به حرفشون عمل نمی ولی خاطرش جمع بود این موجی که تو وجود توه تو رو میرسونه به ساحل انباه موحظه هیچ کسی آدم نمیشه ولی دیدن یک و یک هرم یک بزرگی کار با دل آدم میکنه تمام موازه های آلم نمیتونه بکنه بس باید. ای کاش من پدرت زور دردیده آقای بهادر صحبت کنه نیستن رفتن بیرون باشه پس منتظره میدونم نمیترسیم؟ از چی باید بفرسا از اینکه با این سرف از اومدیم بیرون ممکنه براتون دردسر سر بشه من خیلی وقت نمیگه از چیزی نمیترسم وله وله خب سلام این روزه بهتره که آقای بهادر باید باید بایاتون حرف بزنم سلام سلام بسرم توی روز روزنامه چاپ شده. این عکس اون عکسانی است که آره چند پیش قبلا دیدم. دو سری ازشون چاپ کردم. الان فقط همیرا برامون. این عکس رو خودتون نگرفتیم از کجا به دستتون رسید؟ نش اصلا مهم نیست. مهم اینه که کمکم کن این ها چاپ بشه. واقعا شما فکر می‌کنین کاشفی این رو چاپ می‌کنه؟ غیر ممکنه. من اگه به کاشف اعتماد داشتم که الان تو اتاق اون بودم. سراغ شما چون تنها کسی هست که بهش اعتماد دارم جس شما با بقیه فرق میکنه یعنی میگی مخفیانه چاپ کنن نه آدموی زیادی دنبال این عکس ها هن. خیلی جونشون پایین عکس ها گذاشتن با هزار تا و سختی خودم به اینجا رسوندم که این عکس ها رو به شما بدم اگر کمک کنید مکس ها چاپ بشه پاداشتون تو کسی دیگه نمیین جالبه لابد میخواایوعده یه دنیای دیگر رو برید پس فقط ظاهرت نیت که شده خیلی چیزایی دیگه عوض شد. نه خانم شکبا کار من نیست. این نوشته ها هم شما رو بکشتم میده. هم من رو به خاک سیاه میشونه هم بچه های روزنامه رو بعد وقت رو بیچاره میکنه. این شیبه ای که شما پیش گرفتید به خاک سیاه میشونتتون. نمیشه یکی به می خزد یکی به نفت یا باید این طرفی باشیم یا اون طرفی باید انتخاب کنید. یا اینا رو چاپ میکنید تبدول به قهرمان ملی یا آدم فروشی پیش میکنید و میشید جای این پسره یا حتی خود کاشفی شما که نمیخواید تا آخر عمراد پشت این مثل بشینید میخوایی؟ باشه فقط باید بریم مخفیانه چاپش کنیم هیچ کسی نباید بفهم. شما بریم حقیق کار رو من انجام میدم این که مشکلی پیش نمید باید یه مسئله برای نکسا بنویسم کمکم میکنید باشه با همین نویسم باید جا. من همه این مشکلات رو از چشم شما میبینم مشکلات؟ همینه دیگه از نظر شما هیچی مشکل نیست اگه مشکلی هم باشه راه حلش تو توفنگا گلوله مراقب باش من کار چندانی از دستم بر نمیام قد توصیه میکنم آقاری که نمیشه مجبور به کاری کن این داری به من میگی؟ وا من دیگه رنگ نداره نادر خود رو هر کاری که میکنه با ته نقشه قبلی توه شما این دکتر صاد خیلی جدی گرفت میکن.جل رو بگیر بگو تمومش کنه بگو جمع کنیم از این شهر نفرین شده بریم دست از سر این دخترم برداره هم زندگی اونو تو کرد هم زندگی ما رو شما اگر بخواین ترتیبی میدم شما آسان خوان بین هفت مزن مام خاطر خودم نمیگم. هسته بی افترامی نداشتم مادر بازی در نیارم واقعا بازی در نمیارم خودت میتونی که آخرین بازی دو سر باخته کار عشقه هرچ من این کلمه بخصه شما خیلی معنی نداره زندگی به زندگی خسروخان ریختم. من اگه مرد بودم و جای خسرو بودم میدونی چی کار میکردم؟ یه گلوله خالی میکردم تو مغزت. نمیتونم باور کنم خسرو به مرزی اعتماد کرده که بی خبر از اون ماگیتون رفت آمد داشته. من خلاص خسروخوندو تو کردم. بابا بیرون وقتی باهات حرف میزنم عصبانی میشم خونم به جوش میاد. همه این بدبختی‌ها رو از چشم تو میبینم. یار فایض کسی ها تو که روزی یه چون که هایچی درست و مردتن یارو خیلی لجباز مید نگو حتما خود کاشفی باید دستیم بود بخواست یه نفر با فرست در خونش کاشفی قبردارده چون جلو سوزی ریز آمد بودید نگران نباشیم دادو بیدار کردم و گفتم خود ایشون دستیم بودید یه کارایی دیگه یهیم کردم که حالا بماشیم راضی شد شاف نکنم کار بزرگی کردی خدا کنه الان که کار داره انجام میشه یه مقدار نگرانه قدی کار یکی شروع کردیم و باید تمام کنیم. فقط فردا حتما شما از شهر خارج اگه قضیه لو بده اولین کسی که بیان سراغش شمایه رو توشنه لطفه خیالتون راحت میدونم خوهر من خارج از شهر زندگی میکنم نفاین همه همین نه چیزی که مطمئنم اینه که شما بر پیش کشه اگه ناراحت نمیشین. من به این آدم اصلا اعتماد نده خیلی ازتون اتون نمیدون خدا نگهتون راستی پرو در شهر میرین دیگه درسته؟ با ماشین تا مفصد نمیرن میرم یه جای دیگه کسی منتظرمه بعد از اونم نمیرم یه جای دیگه ستاش کمه اونا را لازم دارم من گفتم نباید چاپ بشن خیالتون راحت اگه اون عکس ها چاپ بشن دردسر من خیلی بیشتر از فای نیست بسه تو برای چی نیخوایم برای چاپ کردن شما متوجه عرض من نمیشید چرا متوجه میشن اون اکس ها چاپ میشن ولی توضیح نمیشه. چرا با دور کنم شون الان در حال چاپ شدن برای روزنامه فردا شما هم چاره نداریم باید بپجیریم اگر این اکس فردا چاپ بشم باعث درد سر از دست نزمی هم دردری از چنگی ما نبتونی درداری. شما واقعا فکر میکنیم به خاطر این اسکنات هم هم دارم با تون همکاری میکنم دو رفتم سعی کردم بفهمم ولی چیزی نگفتم. مسلما پیش رو خانه شما نمی. یه جایی کار درست نیست. کجا شروعست نیست؟ بالاخره چاپ بیشه یا نه؟ باید چاپ باید چاپ بشه. خدا بیامورد نور به قبرش بباره همیشه میگاف تو دختر عقلی هستی سر نفرسی داری یادش بخیر کاش بود اگه تویی که چاپ میکنی همین فردا باید از سهرون بری با چاپ اون ارسا و پخش روزنامه تو تمام کشور دست ید قاتل و دزد و دروغگو رو میشه مردم هم که آگاه بشن و دست اون رو, رو بشه میدونی چی میشه؟ اولین نفر رو که میزارن جلو کیه؟ تو. من فراغ نمی کنم میخوام بمونم و نتیجه چاپ اکس ها رو ببینم ولی از اینجا میرم نمیذارم راهی را که من انتخاب کردم بخواد زندگی تو خراب کنه زندگی من برای چه خراب شدم برای خودم نمیگم که این حرفاتم نشیده میگیرم و چند برام دعا کن اینکه کار هر روز هنه. تو اتاق تاییه جا تو انداختم برو بگی بخواد فکر میکنی من با این دلاشتو بی که دارم خوابم میبره یاد خدا دل تا آروم میکنم احبانم مانه رو نمیشه میگفت وقتی تو صحفه هاستم و نماز بخونیم خدا دعواتمون سچا بگم به حرف من اتفانه باش میکنه. این رو به کیتون اکتماع نجرب را به دیگه ای برو دیگه نمیخوام باش بکن نمیخوام اونو نمو بزن اون تو خون مردم رو بخورم ما کاری با ما نداریم چون در این کار خودتون میخورم ما فقط وسیله باید وای بای, بای میکنه که انجام بشه پشت خالی میکنم وقتی که اون مغز میخوری زمین تاگه ما احوامی تا آخر عمرشم نخواد منو ببینه حفتتا پس رو هر هرچی تلاش میکنم با این مرد قرار ملاقات بذارم پیداش نمیکنم گول خوردم نادر گول خوردم با این اکسا رو توانیم برش گرد. خواهیم کرد. آن دو خونه‌امو پرفروش است. آدم گذاشتن مراقبش میشه. خدا که نفهمی مازری. کاری که جریم می‌افش می‌کنم. کاری که مال اصلی. سرانه این اکسام کارشون میشه خیلی مهمه اگه بهشون نگی تو رو میندازه بازداشتگاه به من اعتماد کن اصلا میدونی چیه اینو بگی بده بهشون آقا یه روز اون نگار که اینا رو نمیشه نصرین این روز ما رو اولین نفر به خونه حکم ادامت میاد فکر کردی من الاقم اینم عاشقای گوهر شاده میخواست avalat نوشتی میخوای با کلک خودت تبره کنی فکر کردی گوشه گوشه منم مغريه گفتن این مملکت جیر چرت و چره ولی نه خط دیگه آقا به خدا من ننوشتم <تصفح> کار من نیست اصلا <تصفح> پس کی خود avalat نوشته من تقریبا مصمره نه آقای کاشفین صاحب اینا رو روشتم. همین نیروان جان کنید میریم دفتر روزنامه شانس بیاری قبل از توضیح روزنامه برسیم اونجا ارمان ببخشید. یه جوریه که اگه دو طفشو در بیاریم مطلب هست میشه روزنامه پخش میشه آدم باید بفرستم بری دفتر روزنامه ارزشا داری قبل از پخش روزنامه اون مطالب متقرف ازش حذف بکنیم آه. یا هر زمان صاف صافه ها چه کجا کنا بی آبان هیچ گفتن کنا خراب شده تو این ولی ولن شبدل شهر یعنی لازم کنی درتی بازی به خاطر این خوز عوالات تیک تیکه تیکت بکنن و بندوزن جلوسک ها گا. اگر تیزبینی و درایت نظمیه نبود این مزخرفات میرسید دست مردم الان کل منجا به هم نیده بود اخو سرف خوشبایی این چه بسادیا خیلالا رو مردم جراس میفرسم از سینه قبلسون کاشفی این روزمه تو هست یا نه این اسمه اینجا هست یا نه آه. آه. بابا پاپوشه دروغه به بیش شرف ایمه دارش بیش دهانه ده بابن بیش شرف دروغه. بابا داریش میخوری، می کنید داریم گول می خوارید چون با خورت نزد هزار تا دشمن دیگه داره می روید تو بخواد دوته از دوته آبیوزمینه بابا وزاریم به این چی داره پر دل باهم به مجرده آره ای که پاسمون به نصبی همون اول کار چنان تصمیحی از گرده این پدر نامر بکشید که یادش باشه دیگه برای من بل بل زبونی نکنم داری بده ده ده ده ده حواست باشه چون از آن نظمیه اومد این طبیلر در دیگه خیلن اینجا رو بگردون تمامینم تحکیل چیه بلا خیال تو بردون شکل بسید بلب ساده بشین روبرون تا من مثل آینه تماشا کنم به زرار زو گم کردم تو چشمای مسته تو قیدا کنم به جست تو چی میخوام از این زندگی دل من تو رو آرزو میکنه به کنارم به مون رون تو باشی به من دخت رو میکنه همه حرفی و ساده زم نمیتونم آسون بگم آشقم به جزگری راهی نمونده برام تا حرف رو با چشمم بگم